حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندید و چشم دل ببازید با دل ببندید هجما که به سبز بیچید توی دنیا از اوج موج شادی چا فردا با قدا شبواع شدت قلب سبز است پیچید توی دنیا از اووج موج شادی تا پردام ق بردار. سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 984، امروز دوشنبه 26 بهمن 1394 پنج و پنج دقیقه آینده با ما باشید مبین، خوشین، چه خبرها؟ ولنتاین راستی؟ کادو گرفتین؟ کادو دادین؟ کجاها رفتین؟ چیکارا کردین؟ جان؟ چابی شما هم بخير. آها، اون خوب اون خوب یه مسئله خصوصی خودتونه دیگه. کلی پرسیدم من چیکارا کرد خوشحالیم که خوش گذشته بتون، ما هم بد نیستیم، به ما هم بد نگزاش. به هر حال ما هم رفتیم به ولنتاین خودمون رسیدیم دیگه. هر یه جور دیگه بچه‌ها نمی‌دونم چرا خستن فقط. بلنتاینیه خیلی خسته شدن شبه بلنتاین برحال دیگه حالا از این حرفا بگذاریم بریم سراغ برنامه امروز که میخوایم با هم در مورد راه های نون در آوردن از هنر صحبت کنیم و بدون فوت وقت سلام عرض میکنیم خدمت همه اون عزیزانی که نون بخور و نمیر یا شایدم بخور و که هنر خودشونو میخورن و یه عرض عدبی هم داریم خدمت کسایی که در کسفت هنرمند به جایی نرسیدن ولی خب خدا رو شکر دیگه در کسبت استادی و آموزش هنر حماسه آفریدن و الان برای شرکت توی کلاساشون باید از یه سال قبل وقت گرفت خدا قوت آقا برو بریم شنوندگان عزیز تنها 17 برنامه دیگر به پایان و شانزده. فرشید میرود فرشید به پایان میرسد فقط 17 برنامه دیگر و فرشید نیست بلده. اگر بار گران بودم, بودم. باره میره وی فرشید اگر بار گران نامهربان یا دیکتاتور بود دار میره وی فرشید <تصفيق> خب به حال این همویی هم بود بر مزار ما خیل ممنونم بل بزن اول بریم بعدن اینجوری کنین دیگه قوطوتی که پاره کنی حال ما درست آفتاب لبه بومیم ولی هنوز که نرفتیم که چی کاریه واسه ازاداری هم میرم پیش باز ها خیلی متشکرم برادر خب دوستان همونجور که میدونین تبلیغات انتخاباتی خبرگان مدتیه که شروع شده و این روزا کاندیده های خبرگان یا خبرگان بهشون یه زمانی اختصاص داده شده که بیان و توی تلویزیون از خودشون خصوصیاتشون بر مردم بگن دیشب آقای جنتی تشریفا برده بودن و در مورد خودشون و زندگیشون به این شکل شفاف سازی کردن من یک خونهش خشد و جل در قوم که زمینشم و اجاره زمینو میدیم ساختمانش هم خشت و گله این خونه رو همون اوایل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی من با یه مبلغی خریدم و الانم همون خونه به حال خودش باقیه آخی. از نظر مسئله نقره ای پراید دسته دوم رو من خریدم که همه دارم از اون استفاده میکنم ای آخه الهی الهی یه خونه خشت و گلی دارم توی قم با یه پراید دست دوم الهی احتمالا بعد از ساعت کاری دولتی هم با همون پرایده میرن آجانس مسافر مسافرکشی شما الان آقا خانم دختر خانم آقا پسر الان شما تو ایران یه کارمند معمولی هم که باشی دیگه بعد چل سال کار کردن دیگه میتونی آقا به سختی هم که شده دیگه حالا یه خونه یه ماشین داشته باشی دیگه بعد حضرت آیت الله جنتی این همه سال ماشاءالله 40 تا 40 تا پست دولتی با هم داشتن ولی ظاهرا خب اول که میخواستن منصوب بشن به اون شغل ها شرط گذاشتن اگه میخواید بابت اونا به حقوق بدید رو من حساب نکنید گفتن اولش یعنی گفتن اصلا نیستن پول گرفتن و. اصولا میدونید که الان بین مسئولین تیریپ عبوزر زمان برداشتن و این حرفا موده حاج آقا هم خواسته کم نیاره دیگه آره، یه خونه خشت و گلی دارن فقط تو با بای پراید دست دوم فقط ما از عکاسان و خبرنگاران عزیز می‌خوایم حواسشون رو جمع کنن تصویر حاج رو پشت فرمون پراید دست دومشون سید کنن که دیدن داره واقعا دستون درد نکنه پیش آ پیش. Yes. Oh yes. <متصفح> <متصفح> اگه کلکل آب و هواس از <متصفح> اتاواست کانادا سردترین پایتخت دنیا باید تماس میگیرم یه گزارش هواشناسی از امریکای شمالی بد بدم خیادت راحت شد کانادا امروز امروز این منفی 40 درجه نتونستی ببینیم اجازه مثل خوب داریم میگذرونیم امروز صبح بود منهای 29 درجه فیلز لایک like منهای 45 درجه 28 درجه زیر سفرونشون میده با جای بابادش احساسش مثل 40 درجه زیر سفره 27 درجه زیر سفرین فیلز لایک 37 <laughs> غریی، واشوام، ایستشاب به بعد میشه 38 درجه زیر 0. هوای شمالو الان من چک کردم، منهای 13 درجه است. بله، اینم گزیده ای از کلکل‌های زیر صفریمون بود تو این فصل سرد آدم با شنیدن همینا کمی توی پراگ به خدا احساس گرما میکنه. خیلی خوبه. همین همین مسیر رو شما بگیرین برین دیگه. بمون زنگ بزنین از وضعیت آب و هوایی شهرتون بگین این روزا دوباره هوای شهرهای مثل تهران آلوده است و بعضی نفس کشیدن سخت شده یعنی حتما باید بالا سر این هوای زوری چیزی باشه یه بادی طوفانی برفی بارونی بزن آلودگی نباشه حسرت یه هوای آفتابی و در این حال تمیز تو این به دل ساکنین شهرهای بزرگ مونده به خدا به هر حال امیدواریم این آلودگی ها که تو بعضی مناطق وارد مرحله بسیار نازل شده برطرف بشه و چشم مردم به رنگ آبی آسمون و سرشون روشن بشه فعلا تنها گزینه‌ی روی میز برای استفاده از این هوای صاف و نه سرد زدن به جاده و رفتن به دل کوه و دشت و بیابونه آه. قدم زدم تو خاطر حد یادم اومد تموم حرفات دلم میخواست دل تو بخواد کنار من عوض شدنیات شد دم قروره و تنگ دلم با خودمم میجنگ دلم تویی حس قشنگ دلم چقدر شکستم. شکستم دریا دریا عشق توی ساهل نگاهم بعد تو هنو سوشت باهم چیه کناهم ساهل ساهل موش میریزه توی روی بخزم این شبیه تو باید روزشم چقدر شکستم امروز میریم سراغ هنر و پول هنر چرخاندن زندگی با عرق ریزان روح یا هنر فروشی برای پرداخت اجاره خانه شماره 984 بدانید و آگاه باشید که کسب درآمد و امرار معاش از راه خلق آثار هنری نوعی غمار بر سر همه چیز یا هیچ چیز است. پس اگر چنین چیزی را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب می کنید یا یا ثروت و رفاه می رسید و یا برعکس همه چیز خود را از دست داده و در نهایت به نان شب خود محتاج شدندگانید امزول. جمعی از دیگه توی این مسیر افتاده ها و خودشون دست خدا سپرده ها و آخر بتشون در حاله از ابهام فرو رفته های رادیو پت پت دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا اصولا از راه هنر نون خوردن به اشکال مختلف اتفاق میفته ساده ترین شکلش اینه که شما خودت به عنوان هنرمند یه اثر هنری خلق کنی و بعد بتونی اونو بفروشید برای این کار باید نه خیلی جلوتر از زمان خودت باشی و نه خیلی عقبتر از زمان عقبتر اگه باشی که کب کارات دموده میشه و خریدار نداره جلوتر از زمانت هم باشی میشی ونگک که تو دوره خودش متااج شبش بود آخرش هم خودکشی کرد بعد از مرگشتاببلاش قیمت های نجومی پیدا کرد. فکر بیچاره اگه زمان خودش یک درصد الان ارزش کارش شناخته میشد چقدر میتونونه زندگی شب بشه این فنگگی بیچاره. اینه که اگه دنبال این هستین که. مثلا چرخ زندگی تو از راه هنر به چرخونی باید نگاه کنی به سلیقه و فکر و چیزایی که تو جامعه مد شده و اگه مثلا دور دوره مثلا اعتراض و رپ و این حرف نه ابو عطا بخونی یا اگه مردم رغبتشون به ابو عطاست و از آقای آنارشیستی و اعتراضی خسته شدن بزنی تو خطه ابو عطا تو هم تو همه کاری دهستن از این ور بوم میافتهن یه دم از اون ور بوم تو کار هنرم همینطوره این لیلی دوستم که گفتم متخصص گالری گردیه خودش هم یه با هنرمنده نقاشی میکشه رنگاش مشهورت میکنه کارای تجسمیشم حرف نداره اون وقت بهش میگم لیلی کاراتو بذار برای فروشی که از این فلاکت مالی که هستی در بیای که چند ماهی سابخونه جوابش کرده بود خونه ما بود تفلی میگه نه ادم هنرشو که نمیفروشه بعد این سورا یون یکی دوستم که گفتم الان چند روزه به قول خودش وارد هیته کارایی هنری شده امروز زنگ زد که آگهی کلاسامو بیارم شرکتتون پخش میکنی بین همکارات گفتم کلاس چی گفت آشنایی با تاریخ هنر گفتم آخه تو خودت تاریخ هنر بلدی که میخوای کلاس بذاری گفت با شاگردا با هم یاد میگیریم چرخ زندگی نمیگرده که اگه بشینم خودم تنهایی مطالعات هنریمو پیش ببرم که قربونت برم شما اول هنرمند شو بعد از این راه کسب درآمد کن ای بابا این هفت ها... از شما سال کردیم و به شما گفتیم که اگر خواستید با ما در تماس بشید راجع به موضوع برنامه نظر بدید، به ما بگیدین که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. به نظرتون حرف درستیه یا نیست؟ و بعد بگین خودتون چه هنرهایی دارین؟ از هنرتون تا حالا چه استفاده‌ای کردین؟ و گفتیم اصلا لازم نیست حتما موزیسین یا نقاش یا بازیگر باشین. کارهای روزمره و هر جنبه‌ای از زندگی ما میتونه هنرمندانه باشه. بله. و این هفته ازتون خواستیم برامون از هنرنمایی های خودتون و اطرافیانتون بگید و شما هم زحمت کشیدید و گفتید فرش جون من فکر میکنم هنر نزد ایرانیان است و بس. من ایران باستان بوده من خیلی خیلی سال قبل الان تغییر کرده شده بله. ادعا نزد از ایران یا اون تو بس الان ما تو هر چیزی فقط بهترین ها رو ادعا میکنم ممنونم شاد باشی. بله خیلی ممنونم ادعا کردن تو این حجم هم خودش جور هنر به حساب میاد دیگه از همه کس بر نمیاد اینم در نظر داشته باشین ممنونم از تماستون اینستاگرام آرش گفته بله هنر نزد ماست و بس میشه این اوج این هنر رو توی کامنت‌های ملت غیورمون پای عکس‌های اشخاص معروف دید که چطور با خواهر مادر هم دیگه وصلت میکنه بل. حالا شما خودتو خیلی عصبانی نکن آرش جان دیگه خود اشخاص معروف حالا اینقدر براشون خیلی مهم نیست وقت نمیکonan بخونم خودمون مینویسیم خودمونم میخونیم هرس میخوریم دیگه نکنیم کارو با خودت بعد دیگه دیگه بابک تو اینستاگرام گفته میدونی تنها چیزی که به نام هنرمندان چیه قطعه هنرمندان بشت زهرا. بابا چه؟ کاری آخه خدا نصیب نکنی چه حرفیه یه دونه خانه هنرمندان هم هست دیگه کم لطفی میکنی یا. بابک جا باقی جزتا مخلصه هم و با این کرد باقی من تو کف ایرانی هستم که مثلا فلانی از زندان امریکا فرار میکنند زیرش کامنت میذارند هنر ایرانیان ایرانی ها نصابند خیلی با حالند یا مثلا یک یاکوزا سردستش یه ایرانیه میگن دمش کرد این رو من نفرم دیدم چی هنر ایرانیان هست و بس محمد تهرون بله محمد جان مورد داشتیم حتی گاهی مثلا یه خبر خلاف خفن مفن و عجیب غریب مثلا توی کشور دیگه منتشر میشه تعجب میکردن که چطور یارو ایرانی نبوده بعضی در این حد خلاف رو هنر ایرانوی ها میدونن و بس ممنونم از تماست یه فیسبوک در مهرنوش گفته در گذشته های دور شاید بشه ایرانی ها رو هنرمند دونست ولی ایرانی های فعلی نه هنری ندارن اگر هم هنری داشته باشن یا خارج رفتن یا تو زندانن خیلی ممنونم نظرتون رو گفتین حال دیگه ما خودمون از اون دستی خارج رفته هاش هستیم خب ببینیم راه های ارتباطی رو سعید یک بار بگووره دوستانی که میخوان بامون در تماس باشند. بله تلفن ها دو و 21 و شماره تلگراممون هست دو سه و میتونید با ععد پس فرداگرام به کانال تلگرام ما بپیوندید. همین؟ بله تماشت بگه نه تمام باشه که ممنم. اه... سید ممنونم ها راستید سعید توی اینستاگرام تینا گفته من مردم واسه لحجه خوشگل سعید وقتی ترکی هفته گفتم بگم خوشحالش بره. ما هم اینجا چند تا زخمی دادیم حالا بازم زیر زبونش از این لحجه ها میکشیم بیرون نگران نباشید خب چی کار داریم میکنین الان؟ تلفن های میخوام پخش کن پخش کن دیگه کشتی من جون به نظر من منر نزده سندی است و بس نه کس دیگه نه ایرانی ها فقط سندی آقا این دیدونه سندی براش پخش کنید خوشحال شد یه سندی براشون پخش کن دوست داره سندی و وینی چاپی چه خدق شنگه جومه وینی چاپی چه خدق شنگه یا بونه بند در چغلق شنگه سرخ یا بونه بندر چقدر قشنگه دختتر رو ما چی تو بکنه مثال حکیمه دخت رو ما چی تو بکنه ث حکیمه شادون پولی دادن یا مفتکیمه شادون پولی دادن یا مفتکیمه برری تو می چپی چقدر قشنگه با سرخ یا بونه بند در چغ غ سرخیام بونه باندا جگانه داریم راجه به امروز جب هنر و پول و پول دروردن حرف میزنیم بعضی هم هستن یه جور دیگه از راه هنرون میخورن یعنی با آموزش هنر ولی معمولا هنرمندایی که موفقترن اونقدر کار و سفارش و اینا سرشون ریخته خب معمولا کمتر فرصت میکنن برن به یکی دیگه یاد بدن که مثلا چه داستان بنویسن چه نقاشی بکشن چه جووری بازیگروی کارگردان قابلی بشن و اینا. اینکه میری میبینی مثلا طرف آگاهی زده مثلا آموزش بازیگری توسط هنرپیشه که معروف سینما و تلویزیون بعد که میری ثبت نام کنی میپرسید استاد این استاد این چیز کیه خانم منشی برمیگرده میگه مثلا چه میدونم استاد جعفری نجات حالا هی تو مغزت فشار میاری این استاد جعفرین نجات کی بوده چی بوده و اینا هر چی فکر میکنی چیزی زیادت نمیاد بعد میری خونه گوگل میکنی میبینی طرف توی مثلا سریالی که مثلا 14 سال پیش از شبکه چهار پخش میشده در نقش یک نقش فرعیه یک راهنده تاکسی حالا توی هر قسمت یه دو قطعه دیالوگ گفته رد شده بعد هی شما پیش خودت فکر میکنی آخه این آدم الان قرار دقیقا چی رو به تو یاد بده و کدوم تجربیاتشو به تو منتقل کنه و چرا نتونست خودش بازیگر موفقی بشه غیر یادت بده و هی فکر میکنی هی فکر میکنی به نتیجه نمیرسی بالاخره بعضیام اینجوری از راه نون میخورن دیگه بله نفر بعدی سلام خانم ببخشید میخواستم تو این دوره های نویسندگی خلاق ثبت نام کنم. دوقطه عکس کپی کارت ملی کلاس دو, دو روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه سط جد تا ۲ ۵ هزار منم شهری هست خیلی عضر میخواام توی برگ آگاییتون نوشته بودین مدررس این دوره ها استاد محمود دولت آوادی اصلا درسته استاد محمود دوات آبادی. خیلی ببخشید الان این بردی آگرایی اینجا همراه منه اینهاش محمود دولت آبادی نوشته نویسنده رمان جاودانه کلیدر بدین ببینم ببین عزیزم دوات آبادیه اینجا آه. علف و تی دوات نزدید به هم چاپ شدن شما فکر میکنی از پاییم چسبیدن شبیه دولته دلوقت. اونم کلیدر نیست رمان جاودانه کلیده اون رشو باناخون به خراشین از بینیره بفرمین رفت راست میگین انگار لکی چیزی بود از بین رفت. البته استاد دوات آبادی واقعاً از نظر صحته کاری یه سر و بالاتر از آقای دولت آبادی هستن. بله. بله، البته من خودم نخوندم اما رمان کلید ایشون میگن یه تحول جدی توی ادبیات داستانی ایران ایجاد کرده. کلاسشون عالیه. آخه من اصلا نشنیده بودم اسم ایشون رو. ایشون قبلا تو مجله خانواده ی یشمی داستان‌هاشون رو با اسم مستعار میموقاب منتشر می‌کردند. عزیزم حالا میخوای ثبت نام کنی یا نه؟ خب راستش یه مقدار فرصت می‌خوام بیشتر فکر کنم. عجله کنیم کلاسه ایشو خیلی زود ظرفیتش تکمیل میشه خیلی ممنون از لطفتون چشم میرسم خدمتون به سلامت نفره بعد دلنگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشند. کامران ملک بوتی سلام سلام فارسی جان سلام همگی امروز راجع به این هنر و پول در آوردن می‌خوایم صحبت می‌کنیم الان راجع به این کلاس‌های مختلف صحبت کنیم نظرت چیه راجع به کلاس‌های بازیگری جواب میده نمیده اتفاقا امروز تو خبر اومده بود دو سه تا از بازیگرای تقریبا نیمچه معروف ایران قراره کلاس بازیگری داره کنن توی پکیج فشورده 16 جلسهی به علاقمندای بازیگری درس بازیگری بدن حالا باید یکی پیدا بشه از خودشون بپرسه شما خودتون تو 16 جلسه بازیگر شدین من نمیدونم چطوری هم. میشه که بشه اما برحال اینم یه راه برای گذرون زندگی دیگه بله. بگذاریم فیلم جدید چی داریم کامرا؟ چرا داریم فیلم منو کجا میبری به کارگردانی حمید زرگرنژاد از چهارشنبه نمایش شروع میشه اول بذار بخشی از صدای فیلم با هم بشنویم تا بعد بشنویم فکر نکردی من خرابم اون دختری که من دیدم علاوه بر عشقاش که تو جاتا سرگردون نیست ها من برات نیستم مثل شما آفرزان بی والسلام بیخیال میشینم با هم حالا دیگه اون شده بخشی از ناخدا قهرمان که قه میاد میخوام با تو بیام چرا این کی تو مرتد؟ ناصر بود تو کی ماندی؟ بخشی از صدای فیلم منو کجا می‌بری ساخته ی حمید زرگرنژاد رو شنیدیم. خب می‌گفتی کامرا فیلم فرشی دو سال پیش تو جشنواره فجر به نمایش در آمد و سی مرغ بهترین بازیگر نقش مردم گرفت اما دو سال پشت صفحه اکران مونده بالاخره از این چهارشنبه اکران میشه بازیگره اصلی فیلم هم سعید راد امیر جدیدی خدا زنال آبدینی علی اصیفند و فرهاد بشارتی است. بسیار خوب از موسیقی چه خبر؟ موسیقیام جونم براتون بگی امروز تو جشنواره موسیقی فعلا لغوی نداشتیم اما شیشومین ترانه سریال شهرزاد توسط محسن چاوشی خونده شده به اسم ماهپیشونی که امروز تو فضای مجازی منتشر شده از هفته آینده جایگزین تیتراژ پایانی فعلی سریال میشه بسیار خب ممنونم از کامران عزیز باد خدافظی کنیم کامران تا فردا و این کارو به اتفاق بشنویم کار محسن چاوشی به اسم تا فاید خودا میونه این همه سرگردونی دل من گرفت ماه پیشونی بیا باز دوباره بی تابم کن منو تو رنگ چشات خوابم کن نگو قصه آخرش مرگ منه داره چشمات من آتیش میزنه نگو از تلخیه دنیا سیرم نگو میرم نگو که میمیرم با سلام بیسریک و سی دوشنبه شب را ضمن استقبال از خبر اطای ویزای فرودگاهی به و 180 کشور دنیا در بد ورود به ایران با مروری بر اناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماویم نظر نماینده ولی فقیه در سپاه با این مضمون که در مواردی که شورای نگهبان از سپاه در مورد کاندیده ها استعلام کرده ما پاسخگو بوده ایم و نظر کارشناسان که خب پس بگو اجاقا جنتی و سپاد دوره همی را رو رسیدگی کردند بالا رفتن مصرف گل در میان دانشجویان بر اساس گفته های قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر و پاسخ گروه های دامنشچوی به ایشان که خب آخه آدم این گلا رو میزنه هوا میره نمیدونی تا کجا میره و اعلام بیعلاقگی پلیس به جریمه مردم از سخنگوی نوجام و سوال فعالان عرصه جریمه از ایشان که یعنی سالی نزدیک به دو هزار میلیار که ما رو جریمه میکنی تازه روی بیعلاقگی تونه مهمترین سر خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بلی دام. یکی از سوالاتی که این روز هستان ناظران را به خود مشغول کرده این است که سعید مرتزوی که به خاطر تخلفات عدیده مالی و مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی پرونده مفتوح غذایی دارد در حال حاضر کجاست؟ در پاسخ به این سوال یکی از متخصصین امور مرتزوی به خبرنگار ما گفت سعید مرتزوی در حال حاضر به شدت تحت تقیب است و به او از توی دستگاه غذایی تکلیف شده است که شبها قبل از خواب برای نظارت بهتر چراغ دمه در خانهشان را هم روشن بگذارد تا نیروهای امنیتی بتوانند توانند کلیه تحرکات دمه در خانه ویرا رست نمایند و افزود حتی به نیروهای زبال کن شهرداری محلی آقای متزوی دستور داده شده در هنگام دریافت سطل زباله منزل ایشان به دقت منطقه را زیر نظر داشته باشند و هر گونه حرکت مشکوکی را سریعن به سرزباله جمکن خودشان گزارش دهند. پایان مشروع اخبار بلی همکنون در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه بله. یعنی بلادر مشکل از است و چای چف وزارت هستیم تا مشکلات ما را، گشاوی کنند بله. برای در مشکل گشا بفرمون بله بنده بله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم مشکل جان میگم دیروز بله. هجاقا دوری نجف آبادی گفته بودن که حمله به سفارت عربستان بله بله. گل به خودی بود و نباید به افراتیا بله. میدون بدیم و اینا نظر شما در این وردی چی؟ بله خب به حضرت آیت الله دوری <تصفيق> رئیس سابق ما هستند که خب در حال حاضر بلی. در شنگره حیعت رئیسی مجلس خبرتان خب مشغول خدمت به نظام هستند دیگه ایشان خب این که درباری خودش میگم نظر درباری حرفایی که زده بود چیه مشکل؟ بله ببینید ایشان همواره ثابت کردن که روحانیت مبارز مهمترین رکن نظام که همه افراد دیگه چون سیاری دوران ها میچرخن دیگه در حقیقت عزیزان چیزه. روحانی عمود خیمه نظام بب... هستن آقا مشکل بب... میگم اگه مدحسنه ها گفتن تموم شد نظرت است در باری حرفاشونم بگو بابا. اه. الو. علو الو. بنده فکر کنم که صدای شما رو دوباره ندارم الو. یعنی من عمود خیمه نظام و یه روز بله این ظهرم شد حیف حیف بگذاریم الو. بگذاریم علا صدای من در این مشکل بله. بله بله ظاهران مشکل برطرف شد بله بله. بله. میگم حاج آقا دوری نجف آبادی بله. میگه اینایی که به سفارت عربستان حمله کردن افراتین بله. پس به نظر تو که از بچه های وزارتی اونایی که تو زمان وزارت خود ایشون بله. تو وزارت اطلاعات قتلای زنجیری رو انجام دادن چی اینو بگو بله خب حقیقتا ام. یک از مسائل که خب. باید بحث بشه اینه که از پوتانسیل حضرت آیت الله دوری بران دوره کامل استفاده نشد و همونطور که میدانید خوبیشان توسط رئیس جمهور وقت مجبور شد که اشتفا بده چی میگی با چی دیری کردیم بله. بگذاریم ولش کن بله. یه سوال دیگه فرم. دیروز آقای اجهی گفته بود برای این کسایی که به سفارت عربستان بله. حمله کردن نه کیفرخواست ساده شده نه بله. اصلا رفتن دادگاه بله. این ماجراش چیه مشکل؟ بله ببینید مسئله اینه که در این مجرا دست های پشت پرده امریکای اروپا خب. اسرائیل غاسب خود عربستان سعودی خب داعش القاعده ترکیه اسلاح با. طلبان مجاهدین بابی گروه های واله پنان بودن دیگه اینه که اصلا کار آسان نیست پرداختن به این پرونده آه، یعنی این همه دست ده. پنان بوده توی مجرا؟ بله عجبا. بله دیگه. ولی من فکر کنم آه که آه کار خود این بچه ازبالایی یا بوده اخیل این... این عزیزان همه ره گذر بودن که در اون تصاویر تصادفن مشاهده شدن بگه رد می شدن <تصح> بله <تصح> اخیه الهی چقدر گوگولی این عزیزان باشه این مشکل اخیزان... باشه وقتمون تمومه دیگه, دیگه. ب ب ب ب ب ب تمام ببینید اگر میشه چند تا شعار هم بدیم که دیگه همه چیز شعار چیز قبلی خیلی چشبید شعار دادن بنده با شما اون سرکاری بود دیگه مشکلی رو... که اونو بید کنید کیت... باشه اصلا سرکاری باشه بنده شروع میکنم درود برخامنه ای درود برخامنه ای چی دوباره این ای. امریکا مرگ بر الو الو بار امریکا درود برخاملی درود برخاملی درود برخاملی عجب باشه باشه الو مش بست بابا برد. بلش کن الو برد. ای بت کرکی ببا تشکرم توجه شما تا اب شبی دیگر برد. برد. و مشکلی دیگر خدا اوندگه دا ببا بست دیگه کار شدم برد. مش برد. خوش سنگین میدم آف علو مش مش ویل نمی‌کنه یا اصلا جی زاده دوباره علی جدیان شوهر داره میگه واسه سلام با یک استیک دیگه در خدمت شما هستیم بازم تشکر میکنیم از همه شما که گاز استیک رو به گاز خونهتون ترجیح دادید و خیلی سریع میریم به سراغ اولین شرکت کننده استیک امشب از خارج از کشور غذای مورد علاقه من فدچینی آفریدو باری با استیک و ساتیک مشرومز هستش مواد لازم برای فدچینی آفریدو آفر و and green steak حتما باید میدیم ول باشه مواد لازم برای سااعتید ماشون و wine Small whole white ما Le crash بعد همه اینا رو داخل یه اسکلت خیلی خیلی داغ بریوزی خیلی میچسبه چسب با هم بخوریم تو فهمش خیلی سخت بود ولی ممنونم از تماستون بریم سراغ شف شهرام. ما فهمیدم زبونت خیلی خوبه ما چون قضاعت ماهی سبور داری دوست داشتم با شما کار کنم همکار گرامی این ماهی سبور توش نداشت بیشتر از هر چیزی لحجه داشتن ما خودم شنیدم داشت نه نداشت عزیزم من مطمئنم به خارجی گفت ماهی سبور نه نداشت نداش نداشت ما رو قضاعت کار نمی کنم. خیلی ممنونم از شفای عزیز پروڈیسورای عزیز میریم سراغ شرکت کننده بعدی. من از تهرانم برای همین تصدور قضای آبگوشت رو دارم قشن سیب زمینی و نخود و گوشت رو میذارین قشن بپزه دومبه چرب رو میدازین کنارش بعد که آمادش رو قشن میکوبین گوشکوب قشنگ دورش رو خودتون تمیز میکنید میخورید و حتما نون سنگک تازه ترشی لیتر ریحون و پیاز یه لغمه از هر کدومشون باید بزنین دوغم یاده تو نره آی مادر بگیرید چون فقط نفاخ گفته باشم بله شف جلال دوست عزیز یه تحقیق علمی اتفاقا ثابت کرده که غذاهای نفاخ برای دستگاه گوارش مفیدترن به خصوص که قضاشم آبگوش باشه عالی بود عالی بود اه کاش من میفهمیدم این همه غذای نفاخ از کجا وارد فرهنگ خوراکی ما شده آروم باش برسا جا باش البته به نظر منم خیلی خوب و شیرین آبگوش رو طبیعی کردین من که واقعا لذت بردم مرسی مرسی بله ممنون از پروڈیوسرها شرکت کنندی بعدی سلام فاشید جان یه غذای محلی که می‌خوام براتون بگم اسمش است یتیمچه یعنی یتیمی کوچیک هر چی دست میاد هل چی میاد هر چی دست داشت میاد می‌ریزون تمام میشید دیگه همین دیگه بله شف مرسا به نظر من یتیمچه غذاییه که می‌تونه آدم رو به هم دیگه نزدیک‌تر کنه پس خیلی با مسخره کردنش به این شکل حال نکردم با عذرخواهی. یعنی الان با ما بودی دیگه ها؟ نه همکار گر من دارم با شرکت کنندمون حرف میزنم. ببین همکار گرامی ما پسورده می خیم ابرو بزارییم سری قضا. اینجوری نمیشه خوا. آقا ما تو یتیمچه شما مایی سبور برزیم حله حالا بهتر شد. بله خب مشکلشون زارن حل شد. پرودوسر های ما با هم دیگه بریم سراغ شرکت کننده آخر. سلام و خدمت شما شنوندان عزیز یکید قضایه مرسوم و به نام لورستانی ها اسمش جگر جگروز قطع قطع هایی جگره نو برمیارن میزرن به سیخ بعدی یه نمک میپاشن ریش و یه لایه یه قشایه به نام وز این قصویه خود دونن به چی مرم این وزن میارن مثل یک کاغذ میمونن از چربی من میپیچرنش دور تا دور این سیخ های جگر بعد از من سر زغال منقل زغال بلوط صفا هستم از آباد ممنونم شف سعید صفا جان به نظر من این جگر وزه شما خیلی بعد خوشمزه باشه من شخصا دوست دارم غذای شما رو روی گاز خودم داشته باشم مرسی من باید اول به همکارم سعید تبری بگم آقا چه گاز قشنگی داشتین شما واقعا تبر کردین ممنونم صفا جانم خیلی خوب بود غذاتون برای ما بازم از این غذا بفرستید خیلی ممنونم از های برنامه استیک و از همه شما شرکت کننده ها شرکت کننده برای امروز تموم شدن با هم گوشه هایی از کارهای استیکی هایی رو گوش میکنیم که به گاز استیک امروز راه پیدا نکردن اما ما دلمون نمیاد صداشون رو نشنویم آقا فرشید بابا صدای ما رو بذار اینجا یه هست اسمش کاول اصلا یک چیزی خدا میدونه به خدا فرشید جان زندگیات محی الدین حقشناس منظومه گفته به نام شارکم سنح که یه بخشی از این منظومه در مورد خوراک بومی سرندجه کلی قبولی، حالا للقلق لقلق یکاوا، دورمه تکوا بورانی برانی گزب پنج گم فلفل رو با زحمت در محیط ها با روغن سرخ می و یه تخمغ از فاصله 5نج سانتی توش میازیم و 10 دقیقه بعد اون رو میخورید اسمش هم خورش مسه زعفرون و گووش د ذره رشک و ترش و شیرین و ملص عالی و حرف نداره و اینا بله ممنونم از همگی شما هر روز میتونید با شماره های برنامه و با تلگرام ما در تماس باشید صداهاتون رو برامون بفرستید رو یا طرز تحییه غذاهایی که دوست دارید با لحجه محلی خودتون برای ما بفرستید تا در برنامه استیک صداتون رو بشنوید و جزوه شرکت کننده ها قرار بگیرید و باز هم تکرار می‌کنم از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است تا بعد باید. نمایی که جلال تهی کنن چقدر عالیه این بچه‌ها این تازه اومدن تازه اصلا معنی اجرا رو به ما نشون دادن باده. خیلی باحال شده رادیو پاسور یعنی اون هفته یه روزی که این جلال تهی کننده میشه و یه خورده بچه‌ها مدون به یاد میکنن میذاره این فرشید اینام اجرا بکنن خیلی باحال میشه من فکر کنم فرشید بره اصلا خیلی خیلی بهتر بشه رادیو پاسور دلم خونک شد یعنی شش ما همین جور روز شمار میگه من 6 ماه دیگه حیب نداره باشه خیلی دو ما دیگه همین موقع دارین با عشق میخونین چرا رفتی چرا من بیقرار حالا اینجوری بگین اذیت کنین تیکه بندازین بله باشه البته شکی نیست در استاد بودن جلال خوب بودن کارو که شکی نیست آقا اصلا روزایی که جلال تعییه میکنه برنامه رو انقدر خوبه من اجرا اصلا بهتره من خودم و خودم رازی ترم به خود جدی میگم انقدر برنامه... فردام که جلال قراره برنامه رو تعیه کنه سه‌شنبه است دیگه سرمام خورده کوشش جلال رفت پیرون رفت به خوابه طب داره سرمو خورده لرز کرده اصلا یه وضعیته ولی فردا تعیه‌کننده برنامه مثل سه‌شنبه‌های پیش باز هم جلال ببینید چه میکنه بله خانم آقایون دختر خانمه و پسرا تبلیغات انتخابات مجلس با توجه به اینکه توی هر شهر و روستا و کوی و برزنی برای یک کاندیدای خاص صورت میگیره گاهی خیلی بامزه میشه یکی از تازه ترین و در این حال خنددار این روش های تبلیغات رو پشنویم با هم برخی از افراد که لیدر یک کاندیدای خاص هستن با مراجعه به, خونواد... به خونه های مردم با در... در دست داشتن قرآن کریم اونها را قسم میدن که به کاندیدای مورد نظرشون رعی بدن بله. یعنی دوستان نامزد نمایندگی چیزی نمونده تو مرحله بعدی فوش نامربوط بذارن وسط. برای اون کسی که بهشون رعی نمیده حالا جالبه که اینا همه فقط اتش خدمت دارن یعنی اصلا دنبال پست و مقام و رانتو و این حرفا نیستن فقط برای خدمت اینا خدایش فکر کنم تو مملکت ماست که برای اینکه به شما خدمت کنن آزرن چشماتون هم در بیارن یعنی آدم با این چشمای کوچیکش چه چیزای بزرگی رو میبینه خدا وکیلی وای وای وای وای, وای. فریبورز غریب سلام سلام سلام به همه گی فرشی جان اول تکلیف ما رو با جلال روشن کند دیشب تا حالا میگه داور مقصر باخت تیمش به نفت شده چیه داستان؟ اتفاقا همین هستم هم پرویزخان مزلومی گفته سرمربی استرلال پرویزخان از یه ماجرای داوری هم پرده برداشته گوش بدیم به حرفای پرویزخان در این مورد یه بینیم آقای پرویزخان چی چ به تیم داوری هم خستهه باشید میگم واقعا من متاسفم برای وضعیت داوری من هیچ وقت راوی جایه داوری صحبت نکردم ولی امروز به ناحق تیم ما رو باعث شکسته شد آیا اکبریان به ناحق امروز پنالتی واضه ما رو نگرفت متاسفانه داوری ها مدت هاست به طرف یه تیم دیگه چرخیده دیچ دابرا ها هر هفته مقصر شکست تیما میشن حالا من نمیدم به طرف کدوم تیم قش کردن به گفته پرویز خون یعنی به طرف منرژ تیم تو بوده آره دیگه احتمالاً. بعد حالا تحقیقات بیشتری بکنیم در این مورد جالب سایت که خبرانان از قول یکی از کاربراش نوشته خطاب به پرویز خان که چطور هفته پیش گل سالم استقلال اهواز مقابل تیم شما مردود شد اون موقع حرفی نزدیم بله اما تیممون داره میرسه به صدر جدول. آه. حالا بگذریم من فقط گفتم. دیگه چه خبر؟ آه. آره. یه خبر خوبم بود فرشید امروز در مورد تیمیت منتشر شد. اومد تو خبرگزاری‌ها سوشا مکانی گلر پرسپولیس با مجوز قضایی میتونه از این هفته بازی کنه. سوشا ما پیش بعد از اون انتشار چند تا از عکسای خصوصیش تو فضای مجازی بازداشت و زندانی و بعدم از زندان آزاد شد از بازی محروم شده. خب خدا رو شکر. این یه مدل رو نداشتیم که بازیکن برای بازی کردن بره مجوز قضایی بگیره که دیگه اینا هم دیدیم دیگه. یه خبر خوبه دیگه هم داشتیم فرشید اونم امه. مرخص شدن ساره عبدالملکی از بیمارستان بود که امروز منتشر شد خبرش پدرش در گفتگو با ایسنا از همه کسانی که تو این یه کمک کردن تشکر کرده به از خانم شقایق دهان آقای مهراد و غاسم خانی دوتا از منرمندهای گرامی گفته اگه کمک که اونا نبود شاید برای تامین مقارج بیمارستان مجبور می شده از 200 بگیره. بحبه. دمشون گرم برحال خانم شقایق دهکان و, دهکان و آقای مهراب قاسمخانی ظاهرن کمک خیلی زیادی کردن که ایشون اینجوری گفتن ممنونیم ازشون و از فریبورز عزیز تا فردا باید خدافزی میکنیم تا فردا خدا میگه از آن از آن استنبول، روز از آن استنبول، رهبری معظم صاحب به اطلاع می‌رساند با توجه به گداویشوگ واصله از مونیخ محل برگزاری مذاکرات صلح سوریه جواب ظریف وزیر خارجه کشورمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را با اسم کوچک یعنی فدریکا و موگرینی هم ظریف را جواب صدا میزند ما این زاگه و حرمت شکنی بزرگ را به پیشگاه مقام معظم رهبری و باقی دل با حساب نظام تسلیت گفته مراسمی به این مناسبت در حرمتی تهران برگزار می نماییم آب مراسم حرمت ها را شکسته بازن رفته زریف برو خیال کن، مدرهی رو رها کن وسط در آن یک بسته زرد کجاست؟ مورگنی یک طلاق چوب دوکاپ برسوان در این مراسم میز لیست انتخاباتی یوسوف گراویانبی ادعا بین هزار توزیع خواهد شد تا با رأی دادن به این لیست در آینده جلوی این بی‌ورمتی‌ها گرفته شود ستاده مبارزه با بی‌ورمتی‌ها به بی صورت گرفته در دوران پساورجان دوران خدمت سربازی از اون جایی که من ورزشکار بودم به من یه دونه سالن ورزشی دادن که مدیریتش بکنم اون تا صبح سپاهیای سرحنگای عزیزمون وقتی که می کارت می‌زدن بیان تو تا و 9 نیمینا میومدن در سالونو میزدن درو باز میکردن میومدان تو تا ساعت دوازده میخوابیدن بعد میگفتن ساعت دوازده <تصفيق> که سرویس میخواد بریم ما رو ویدار کن میخوایم با سرویس بریم هنر نزد سپاهیان هست و بس امیر هستم از تهران ممنونم امیر جان نمیدونم ولی شاید برای همین استخر و سالن ورزشی و سونا و اینا عزیزان سپاهی حق مأموریت تو حقوق و سختی کار و اینا دیگه من دلیل نداره آدم از زیر استخر در برهش ممنونم از تماس شما اما امروز موضوع راجع به هنر و پول دروردن حالایی گفته میشه که هنرمنده از اخشار ضعیفن و پول خوبی در نمیارن اما بالاخره هستن هنرمندایی که تو مملکت ما که از رای هنرشون ماشالله خوبم پول در میارن اصولا اینجوریه که هر چی یه هنری بیشتر دیده بشه، بیشتر تو جامعه به پیچ پول بیشتری هم نصیب هنرمندش می‌کنه. مثلا درسته حالا دستموزو بازیگرای سینمای ما اصلا قابل مقایسه با بازیگرای هالیوودی نیست، ولی بازیگرای درجه 1 سینمای ایران هم بر اساس اطلاعاتی که ما گرفتیم، الان برای هر فیلمی که مثلا دو ماه بعد در گردش باشن، یه چیزی هول هولوا هول چون مثلا 200 میلیون تومن پول می‌گیرن. یعنی طرف اگه زبل باشه و بگیم مثلا سالی 4 5 تا فیلمم بازی کنه، ممکنه بتونه مثلا در سال 1 میلیارد تومنو بزنه تو گوشش. جان 4 5 تا بازی نمیکنه حالا زیاده دو سه تا دیگه در بهترین حالت یعنی گفتیم دیگه حالا 500 600 میلیون در سال اما خب این هم در نظر بگیرین که این سینماست که همچین گردش ای رو میتونه ایجاد کنه مثلا شما بازیگر درجه که تئاتر بازی باشی برای هر کاری که انجام میدی باید بری دعا کنی بلکه پولی بد بدن حالا دیگه رقمای میلیونی و که پیشکش دیگه هم که بیش اینکه کار شما جلب بشه به قول شاعر تقاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام با هنرها پغلاده پغلاده روز نامه روز نامه پغلاده هر ثانیه پیش خوب. روزنامه افکار به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امروز تیتر زده بود که سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان خواهد شد. حالا چرا سوئیس؟ مثل این که دو تا از اون مثلا اشرار مازندران بودن، و با هم دعواشون بشه بعد پروفسور صمیمی رو بفرستان نقش واسطه رو بازی کنه. نمیشه که از با روحیاتش جور نیست آخه. سوئیس، ایران، عربستان، نمیدونم. روزنامه اطلاعات به نقل از آیت الله خامنه ای در دیدار با رئیس جمهور کشور غنا تیتر زده بود که سیاست ثابت ما در قضیه سوریه طرفداری از صلح است. این معظم‌له هم گیر آورده دیدار رئیس جمهور قناص چیزی چیز خبر نداره دائم جی واسش خالی مالی و روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور برای کاهش مشکلات اقتصادی تیتری زده بود که آسان مقدس هم مالیات بدهند استغفر الله این اگه توهین به مقدسات هم نباشه سرکیسه کردن مقدسات محسوب میشه که واقعا شرم آوره اصلا خوب نه محمد علی صالحی گفته وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتن یک وزیدن یک واژه، یک ماه من فکر می کنم در قیاب تو همه ی خانه های جهان است، همه ی پنجره ها بسته است وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بی دلیل زمینم من عاشق توی شدم که سخت عاشق تو میرسد دلم یا مر میکنه فقط عشق که این قدر نترس میکنه میخوام به چشمت